عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. خب، به بررسی کتاب اعمال رسولان و مطالعه زندگی شاول ترسوسی ادامه میدیم که تبدیل به بزرگترین رسول و خادم خداوند یعنی پولس رسول شد. این درس بسیار مهیجه چون ما میبینیم که خداوند بزرگترین دشمن خودش رو که در صدد آزار رساندن به پیروان مسیح است تبدیل میکنه به بزرگترین خادم خودش. دعا میکنیم کنیم این درس شما رو در زندگیتون و در ایمانتون تشویق کنه. با هم به درس امروز گوش میکنیم. در پایان درس قبلی داشتم برخی تفسیرها رو درباره پنتیکاست شخصی برای شما می گفتم. گفتم وقتی خدا به یه پیرمرد مأموریت داد که بره و شاول ترسوسی رو تعمید بده، اون پیرمرد کمی ترس و نگرانی داشت. در اعمال رسولان با به نه میخونیم، اما خداوند به او گفت تو باید بروی زیرا این شخص وسیله است که من انتخاب کردم تا نام مرا به ملتها و پادشاهان آنان و قوم اسرائیل اعلام نماید. خود من به او نشان خواهم داد که چه رنجهای بسیاری به خاطر نام من متحمل خواهد شد. پس هنانیا رفت وارد آن خانه شد و دست بر شاول گذاشت و گفت ای برادر ای شاول خداوند یعنی همون عیسایی که بین راه به تو ظاهر شد مرا فرستاده تا تو بینایی خود را باز یابی و از روح القدس پر گردی در همان لحظه چیزی مانند پوسته از چشمان شاول افتاد و بینایی خود را باز یافت و برخاسته تعمید گرفت در درس قبلی به داستان مهیجی رسیدیم که مربوط به تبدیل شاول ترسوسی بود که بعد از اون او تبدیل شد به پولس رسول بزرگ. بعضی ها بر این باورند که اسم این کتاب اعمال رسولانه چرا که تقریباً نیمه اول اون درباره اعمال پتروس و نیمه دیگر درباره اعمال پولس هست. پولس رسول یکی از بزرگترین رهبران در کلیسای عهد جدید است. او نیمی از عهد جدید رو نوشته. بدون شک پولس رسول بزرگترین خادمی بود که کلیسه های عهد جدید به خود دیده بودند. در جلسه قبلی در نیمه اول باب نه اعمال درباره تبدیل او خوندیم. در نیمه دوم باب نه درباره چیزی میخونیم که میتونیم بهش پیامدهای تبدیل پولس رسول بگیم. خدا به پیرمردی به نام هنانیا میگه میخوام بری و فردی به اسم شاول ترسوسی رو تعمید بدی حتی اسم شاول باعث ترس و وحشت در دل این مرد میشد. چرا که شعول ترسوسی برای کلیسای اولیه مثل آدولف آیشمن برای یهودیان در طی هولوکاست در اروپا بود؟ شعول ترسوسی در پی به دامنداختن و زندانی کردن آزار و کشتن ایمانداران بود؟ هنانیا میگه خداوندا من راجع به این مرد شنیدم که چه خسارتهایی به قوم تو وارد کرده و الان با حکم دستگیری ایمانداران اینجا اومده اما فرمان قطعی هست و خداوند میگه نه تو اشتباه میکنی هنانیا. او ظرف برگزیده منه و من نقشه بزرگی برای زندگی او دارم. حالا فکر میکنم این خیلی جالبه که خدا تومار زندگی پولس رو باز میکنه و به این پیر مرد نشون میده که چه نقشه‌ای برای زندگی شاول ترسوسی داره و او قراره به بزرگترین رسول تبدیل بشه. خدا اینو به شاول نشون نمیده و فقط به او میگه بلند شو و به دمشق برو و وقتی شاول اون سوال بزرگ رو میپرسه که خداوندا میخوای من چیکار کنم؟ یک جواب میگیره. به دمشق برو و وقتی به اونجا رسیدی بهت خواهم گفت که مسیر بعدی که برات در نظر گرفتم چی هست کاربرد عملی اینجا اینه که خداوند اگه بخواد میتونه اراده کامل خودش رو برای زندگی های ما نشون بده ولی معمولا چون این کاري نمیکنه خداوند اراده خودش رو برای هر روز از زندگیمون به ما نشون میده برای هر روز یک فرمان داده میشه پس اگه میخواید اراده خدا رو برای آیندتون درک کنید باید در اراده خدا قدم بردارید، اون وقت خدا به اندازه نیاز شما اجازه میده که آینده رو ببینید، وقتی این کار رو بکنید، فقط قادر خواهید بود هر بار یک فرمان رو ببینید، چون که روش خدا برای آشکار کردن ارادهش به ما این هست، اگرچه او میتونه تصویر کلی رو به ما نشون بده، همونطور که برای هنانیا آشکار کرد، دوتا از زیباترین کلمات کتاب اعمال کلماتی هستند که گفته. وقتی به خانه‌ای که پولوس در اونجا منتظر او هست میره اولین کلماتی که هنانیو میگه اینها هستند برادر شاول من فکر میکنم که اون کلمات بسیار زیبایی هستند چاک کولسون در کتابش به نام تولد دوباره درباره واقعی با ما صحبت میکنه که بلافاصله بعد از تولد دوباره اش روی داده یکی از دوستانم به نام دوکو چاک نیکلسون و هارولد هاگز رو که سناتور بود دعوت میکنه که در خانه او ملاقات کنند دوک میدونست که اونها به لحاظ سیاسی با هم مخالف هستند و رقبای سیاسی اما هارولد یک ایماندار تولد دوباره بود و حالا چاک کلسون هم از نو متولد شده بود دوک خواست که اونها رو کنار هم قرار بده و وقتی اونها ملاقات کردند به هیچ وجه هیجان زده نبودند حداقل هارولد هارکس از ملاقات با کلسون هیجان زده نبود او هم مثل خیلی ها از تبدیل چاک مطمئن نبود در خانه دوستم چاک داستان تولد دوبارش رو تعریف کرد و گفت که چطور به خانه مردی به نام تام فیلیپس رفته و توسط بازرگانی برجسته به مسیح هدایت شده. هارولد هاگز بلند شد و به طرف او رفت و بغلش کرد و گفت تو حالا برادر منی و من دوستت دارم. بعدها هارولد هاگز و کسان دیگری که در مقامات بالا بودند مرتبا با چاک ملاقات می و با او دعا می کردن. با هم کتاب مقدس می‌خواندند و به عنوان شاگرد عیسی مسیح با او قدم می‌زدند. وقتی چاک به خاطر مشکلاتی که پسرش در رابطه با مواد مخدر به وجود آورده بود به زندان رفت و در تنگنا بود، سه نفر از این افراد داوطلب شدند که به زندان برند و به جای چاک دوران محکومیت رو بگذرونند. این نوع برادری مفهوم واقعی کلیسای مسیح است. این همون چیزیه که شما اینجا در نیمه دوم باب 9 اعمال می‌بینید. به محض اینکه هنانیو میفهمه که این بزرگترین دشمن کلیسای اولیه تبدیل شده، به راحتی میگه برادر شاول و من فکر می کنم این خیلی زیبا هست. وقتی زندگی پولس رو در نیمه دوم باب نه بررسی می کنیم، چالش چالشهایی رو در رابطه با مقطعهای زمانی در زندگی پولس رسول خواهیم داشت. از داستان تبدیل شاول ترسوسی که لوقا نوشته پیداست که او تبدیل به پولس رسول میشه. و به محض اینکه تبدیل میشه با شجاعت در نام ایسای مسیح در دمشق و اورشلیم موعظه میکنه اما اگه با نوشته های پولوس آشنا باشید میدونید که در باب اول قلاتیان پولس رسول به ما میگه که تجربه ای داشته و این باید در این ترتیب زمانی جایی قرار بگیره در باب اول غلاطیان پولس رسول به ما میگه از طرف پولس رسول که رسالت خود را نه از جانب انسان و نه به وسیله کسی به دست آورد بلکه از طرف ایسای مسیح و خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید رسول شده است. او میگه که بعد از تبدیلش او با کسی تماس نگرفته به اورشلیم نرفته و با پتروس و و یعقوب رسولان پیش از خودش تماس نگرفته بلکه به صحرای عربستان رفته و در صحرای عربستان با مسیح قیام کرده ملاقات کرده. پولس مسیح قیام کرده رو در راه دمشق ملاقات کرد و مسیح قیام کرده، او رو به صحرای عربستان فراخوند. بعضی از محققین میگن به مدت سه سال بعضی میگن چهار سال و بعضی چهارده سال میگن پولس رسول ادعا میکنه که در صحرای عربستان با مسیح قیام کرده ملاقات داشته همونطور که ایسا دوازده شاگردی رو که از زمان تعمید او تا سعودش با آسمان با او بودن تعلیم داد پولوس را هم در صحرای عربستان تعلیم میده این ادعای بزرگی بود که پولس رسول می‌کرد در گلاتیان باب یک، او بعد از اینکه شرح تجربیات عربستانش رو به ما میده میگه که آنچه به شما می‌نویسم عین حقیقت است و خدا شاهد است که دروغ نمی‌گویم عیسی ادعاهای زیادی درباره خودش کرده بعد وقتی ادعاهای عیسی رو مرور کنید به قول سی اس لوئیس استاد فقید ادبیات رنسانس در دانشگاه آکسفورد عیسی شما را با این سه گزینه مواجه میکنه وقتی ادعاهای او رو ملاحظه کنید یا میتونید او رو دروغگو خطاب کنید یا میتونید کمی ملایم تر باشید و او رو دیوانه خطاب کنید و یا میتونید این واقعیت رو بپذیرید که او همونی هست که میگه و خدای زمین و آسمان هست و میتونید به این واقعیت اقرار کنید که او امانوئل بوده خدا با ما و در برابرش سجده کنید پولس رسول هم اینطور میگه او در باب اول گلاتیان میگه من یا یک دروغگو هستم و یا یکی از بزرگترین معجزات در عهد جدید هستم. حالا این مهمه که تصمیم بگیرید که آیا فکر کنید پولس دروغگو هست یا یک معجزه چون اون نیمی از کتابهای عهد جدید رو خواهد نوشت. پس این خیلی مهمه که در این مرحله تصمیم بگیرید آیا پولس یک شیاد بود؟ یک دروغگو بود؟ و یا یکی از بزرگترین معجزات در عهد جدید بود؟ در هر حال شما باید ترتیب تاریخ زمانی او رو اینجا در داستان زندگیش در نیمه دوم باب نه اعمال بررسی کنید. پولس تجربیات زیادی داشت. پولس تجربه تبدیلش رو داشت که تاثیر عمیقی بر زندگی او داشت. پولس تجربه صحرای عربستان رو داشت که تاثیر عمیقی بر زندگی او گذاشت. مخصوصاً بر خدمت تعالیم و نوشته های او تاثیر گذاشت. پولس همینطور تجربه ای از آسمان داشت. در دوم قرنتیان باب دوازده پولس به ما میگه که با آسمان سوم برده شد این میتونه مربوط به زمانی باشه که او رو در لستر سنگسار کردند و به حال مرگ رها کردند وقتی او به آسمان سوم برده شد پولوس تجربه یافت که عمیقا بر زندگی او تاثیر گذاشت این مرد رو جدا از تجربیاتش نمیتونید توصیف کنید وقتی تجربه یه تبدیل پولوس رو مطالعه میکنید اینو به یاد داشته باشید که باید به برههای زمانی این تجربه هم توجه داشته باشید نه فقط تجربه تبدیل او یا تجربه راه دمشق او بلکه باید تجربه صحرای عربستان رو هم مد نظر داشته باشید در اعمال با به نه وقتی به آیه 26 میرسید اینطور میخونید وقتی شاول به اورشلیم رسید سعی نمود به شاگردان عیسی مسیح ملحق شد اما آنان از او بیم داشتند زیرا قبول نمی کردند که او واقعا پیرو عیسی شده باشد به هر حال برنابا او را برداشت و به حضور رسولان آورد و برای ایشان شرط داد که چگونه او در راه دمشق خداوند را دیده و چطور خداوند با او سخن گفته و به چه ترتیب شعال در دمشق بی باکانه به نام ایسا معظه کرده اینجا جاییه که شما با شخصیت زیبای دیگری در کتاب اعمال آشنا میشید کتاب اعمال برگرفته از خدمات پتروس و خدمات پولوس هست به علاوه این رهبران بزرگ افراد خیلی زیادی هستند که باید ضمن مطالعه، کتاب اعمال با اونها ملاقات کنید. وقتی کتاب اعمال رو بررسی می کنید، باید یاد بگیرید که با حدود پنجاه شخصیت آشنا بشید و اونها رو خوب بشناسید. این یکی از زیباترین اونهاست. اسمش برنابا هست که به معنی پسر تسلی است. پسر آرامش. برنابا اولین شریک خدمتی پولس بود. وقتی آیات رو بررسی می کنید و با هم مقایسه می کنید و به تفسیرها نگاه میتونید به این نتیجه برسید که بعد از تبدیل پولس و بعد از تجربه صحرای عربستان او به ترسوس برگشت که شهر زادگاهش بود. تعداد زیادی از مردم در انتاکی تبدیل شده بودند و برنابا اونجا بود که به این تبدیل شدگان جدید در انتاکی تعلیم بده و کمک کنه. برنابا شاول ترسوسی رو به خاطر می آورد. او به این فکر افتاد که این مرد باید به امتاکیه بیاد و به این نوع ایمانان تعلیم بده. پس به ترسوس رفت و با جدیت دنبال پولس گشت و بالاخره او را پیدا کرد وقتی پولس را پیدا کرد او را به انتاکیه آورد و به خدمت تعلیم گماشت واقعا برنابا بود که خدا از او استفاده کرد تا پولس رو وارد خدمت بزرگ تأسیس کلیساها بکند بکنه. همونطور که در نیمه دوم اعمال رسولان میخونیم، برنابا بود که برای پولس نزد دیگر ایمانداران شفاعت کرد در غیر این صورت شاید دیگر ایمانداران کاری با پولس نداشتند و به او اهمیت نمیدادند وقتی عظمت خدمت پتروس رو ملاحظه می کنید یادتون باشه که اگر کار مرد کوچکی به نام آندریاس نبود شاید پتروس رسولی هم وجود نمی داشت. آندریاس کسی بود که برادر شمعون رو نزد عیسی آورد پتروس خدمات عظیمی داشت اما اگر برادرش رو به حضور عیسی نمی آورد هیچ اثری از این خدمات نبود حالا باز هم همون چیز رو می بینید. شاید اگه مداخله این مرد نبود هیچ اثری از خدمات پولس رسول هم نمی بود برنابا مردی که به ندرت کسی به او فکر میکنه. همونطور که گفتیم معنی اسم او پسر تسلیه است نام او نشان دهنده الگوی عتیه او و خدمت او هست. برنابا مردی بود که همیشه مردم را تشویق میکرد. او همیشه وفاداران مردم رو بنا کرد و اونها رو تشویق میکرد کاری بکنند که خدا دعوتشون کرده بکنند سالها قبل مردی بود به نام داوسون تروتمن. وقتی او مرد بیلیگراهام در مراسم تدفین او معزه میکرد. کرد بلیگراهام گفت که دافسون زندگی های زیادی رو تحت تاثیر قرار داده یکی که افرادی رو که میشناخته تشویق میکرد دافسون معتقد بود که باید با مردم یک به یک ملاقات کنه و اونا رو راهنمایی کنه و تعلیم بده تا در ایمانشون رشد کنند او مسئول نوع در خدمت بشارت بیلیگراهام در سالهای اول بشارت او بوده داوسون در یک حادثه غرق شدن قایق مرد. دختری در قایق بوده که شنا کردن بلد نبوده. در حالی که دافسون او رو بالای آب نگه داشته بود، خودش غرق شد. وقتی این داستان در مجله تایم نوشته شد، اونا عکسی از دافسون رو چاپ کردن و زیر عکس نوشته بودند. او همیشه در حال نگه داشتن مردم در بالا بود. این داستانی از زندگی دافسون تروتمن بود. این میتونه نوشته‌ی مناسبی بر سنگ قبر برنابا باشه مردی که همه رو بالا نگه می‌داشت من شما رو با این مطلب به چالش می‌کشم آیا میدونید که در اکثر کلیساهای عیسی مسیح به کسانی نیاز هست که مردم رو در رابطه‌ی فردی تشویق کنه و به اونها خدمت کنه آیا مایلید وقتی روح القدس شما رو هدایت میکنه چنین کسی برای مردم باشی و اونها رو تشویق کنید کسی باشند که خدا میخواد باشند. در پایان اعمال باب پانزده لغا میگه که برنابا و پولوس خدمت بشارتی بزرگی با هم دیگه داشتن. اونها در حال آماده شدن برای دومین سفر بشارتیشون بودن. برنابا میخواد مرد جوانی به نام یوحنا معروف به مرقس رو هم با خودشون در این سفر ببرن. یوحنا در سفر اول هم با اونها بوده اما وقتی جفاها شروع شده یوحنا اونها رو ترک کرده و به خانه خودش رفته. پولوس از این جریان خاطره خوبی نداشته و به برنابا میگه که سلاح نیست او را با خودشون به این سفر ببرند. یوحنا هننا برادرزاده برنابا هم بوده در اعمال رسولان اینجا چیز غمنگیزی هست. کلام میگه اختلاف بین اونها به حدی بالا گرفت که از یک دیگر جدا شدند. پولوس تیلاس رو با خودش برد و برنابا مرقس رو به همراه خودش برد و هر کدوم به مسیری جداگانه رفتند. اما در آخرین کلامی که پولوس در دوم تی باب با 14 ايه 11 مینیویسه از تیموتائوس میخواد که بیاد و او رو ببینه و به او میگه تنها لغاب با من است مرقس را بردار و با خود بیاور چون برای کار من مفید هست. حالا چرا این جوانی که در موقع جفا در سفر اول اونها رو ترک کرد و به خانه رفت در آخرین روزهای زندگی پولس مفید شده به این دلیل که برنابا همیشه در حال بنا کردن و بالا نگه داشتن او بوده وقتی پولس اون جوان رو رها کرد، برنابا به خدمت و بنا کردن این مرد جوان، یوحنا ادامه داده. برنابا هرگز او رو رها نکرده و در انتها این مرد جوان تبدیل به خادم ارزشمندی شد. مرقس همون مردیه که نویسنده دومین انجیل هست، انجیل مرقس. وقتی کتاب اعمال رو می خونید و با این شخصیت‌های بزرگ مثل پتروس و پولس ملاقات می‌کنید، این افراد کوچک رو نادیده نگیرید. افراد کوچکی نظیر برنابا که الگوی خدمتی دارند که اونها رو در معرض دید قرار نمیده. شاید الگوی عطیه شما مانند الگوی پتروس و پولوس نباشه و الگوی عطیه شما مانند الگوی برنابا باشه. الگوی عطیه برنابا به طور چشمگیری مهم و ارزشمند هست. پولوس و برنابا تیم خوبی رو تشکیل داده بودند. چون خدمت پولوس کلیسا رو تبدیل می کرد و برنابا عطیه ای داشت که با دوستی میکرد این غم که این تیم زیبا به خاطر اون مسئله در پایان باب پانزده از هم میپاشه اما خدا رو شکر که برنابا به توانایی های اون مرد جوان معتقد بود و او رو تشویق کرد تا جایی که مرقوس به خودباوری رسید و تبدیل به خادمی مفید شد ضمن بررسی کتاب اعمال رسولان حالا به باب شانزده رسیدیم که میتونیم بهش الگوی پندیکاس برای تاسیس کلیسا بگیم. هرگز این دیدگاه رو فراموش نکنید که کتاب اعمال با پنتیکاس شروع شد و پنتیکاس هرگز به پایان نرسید. پنتیکاستی که در باب دو در موردش خوندید، مانند موجهای حلقوی دائمان در حال تکرار است. از اعمال باب دو تا انتهای کتاب اعمال پشت سرهم هم پنتیکاسهایی رو میبینید. حالا به خاطر داشته باشید که هدف پنتیکاس تکمیل و اجرای معموریت بزرگ بود. معموریت بزرگ داده شد، بعد به ایمانداران گفته شد منتظر باشید که وعده پدر عملی بشه و قبل از اون سعی نکنید این ماموریت را اجرا بکنید. پس اونا منتظر شدند و وقتی وعده پدر در روز پنتیکاس تحقق یافت و روح القدس نازل گردید نتیجهش این بود که سه هزار نفر تبدیل شدند. بعد از اون کلیسا رفت و به موعظه کلام خدا پرداخت و ماموریت بزرگ رو به انجام رسود ملاحظه کنید که در کتاب اعمال برای انتشار انجیل مقاطعی وجود داره. یقیناً یکی از مهمترین این مقاطع تبدیل شاول ترسوسی هست. پولس پنتیکاستی شخصی در راه دمشق داشت و پنتیکاست دیگری در طی تجربیاتش در صحرای عربستان داشت که نتیجش این بود که رهبری بزرگ نصیب کلیسا شد که بنیانگذار خدمتی عظیم شد که در موردش در کتاب اعمال میخونید. وقتی به باب شانزده میرسید، پولوس در فکر تدارک سفر بشارتیش هست. او میخواد به آسیا بره و انجیل رو معضه کنه اما اینجا با تجربه پنتیکاستی دیگری مواجه میشه و ما میخونیم که روح القدس مداخله میکنه و وقتی به سرحد میسیه میرسه سعی داشته که به استان بتینیه بره اما روح ایسا به او اجازه نمیده اگرچه پولس و دوستانش قصد داشتن به میسیه و بطینیه در آسیا برن اما روح القدس اجازه نمیده بنابراین از میسیه گذشتن و به شهر ترواز اومدند در همان شب پولس در رویا دید که شخصی مقدونی ایستاده بود و با التماس به او میگفت به مقدونیه بیا و ما را یاری کن. کتاب مقدس میگه به محض اینکه پولس این رویا رو دید ما عازم مقدونیه شدیم. زیرا شکی نداشتیم که خدا ما را خونده بود که به ایشان نیز بشارت دهیم. این زمان بسیار استراتژیکی در تاریخ کلیسا یا دنیای خدمت است. اگر پولس همونطور که قصد داشت به آسیا رفته بود انجیل در اون مسیر انتشار پیدا میکرد. و از اون اونجایی که تمدن انتشار انجیل رو دنبال میکرد اون تصمیم می تونه سبب انتشار انجیل و گسترش تمدن در آسیا بشه اما وقتی پولس توسط روح القدس هدایت شد که به مقدونیه بره این سبب انتشار انجیل و گسترش تمدن در اروپا شد این مقطع بسیار مهمی در خدمت جهانی هست و خود پنتیکاست دیگری هست این الگوهای پنتیکاست هنوز هم ادامه دارند هر بار که مقتعه مهمی در انتشار انجیل وجود داره، یک پنتیکاست کوچکی رو در اونجا میبینید. وقتی باب 19 رو میخونید، متوجه میشید که اونا بالاخره به با آسیا میرن. اونها به افسوس میرن و در اونجا پنتیکاست دیگری رو میبینید. وقتی پولس رویای مقدونیه رو میبینه و مردی از مقدونیه او رو به کمک میطلبه او به مقدونیه میره. اولین شهری که وارد میشه فیلیپی هست. حالا شاید فکر کنید از اونجایی که در رویای پولس مردی از مقدونیه داشت میگفت بیا و به ما کمک کن حالا که او به شهر فیلیپی رفته اونجا چند صد نفر رو پیدا خواهد کرد که منتظر او هستند تا از انجیل بشنوند اما پولس هیچ گروهی رو در اونجا پیدا نمیکنه. او در سفرهای بشارتی خود معمولا به کنیسه ها می رفت اما در شهر فیلیپی هیچ کنیسه ای وجود نداشت. روز شبات از شهر خارج میشن و به کنار رودخونه می و در اونجا با زنان خداپرستی ملاقات میکنن که در اونجا جلسه دعایی ترتیب داده بودن. پولس شروع میکنه اونجا انجیل رو برای این زنان یهودی خداشناس موعظه میکنه. ما در اعمال رسولان اینطور طور میخونیم. و زنی لیدی نام فروش که از شهر تیاتیرا و خداپرست بود، میشنید که خداوند دل او را گشود تا سخنان پولس را بشنود. اون زن خیاط بود که احتمالا برای های اشرافی لباس میدو. معنی ارغوان فروش همین هست. او خداپرست بود وقتی پولس موعظه میکرد کلام میگه که او میشنید در اشعیا 53 اشعیا سوالی میپرسه کی است که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد یا چه کسی شنیده که ما انجیل مسیح را موعظه میکردیم عیسی گفته هر که گوش شنوا دارد بشنود جالبه که چطور بعضی ها وقتی انجیل موعظه میشه میشنوند و بعضی ها نمیشنون خب این زن لیدیه اون رو شنید او وقتی پولس انجیل رو معزه می کرد اون رو شنید ما میخونیم که خداون قلب او رو باز کرد بعد او در خانهش رو به روی پولوس و تیم خدمتی او باز کرد این بسیار زیبا هست. ما میخونیم در حالی که پولوس کلام خدا رو باز میکرد، خدا قلب این زن رو باز کرد و این زن در خانهش رو باز کرد و بعد خانه لیدیه نخستین کلیسای اروپا شد امروزه اگه شما به اروپا سفر کنید، انواع کلیساها رو میبینید. نیچه فیلسوف اروپایی به این کلیساها نگاه کرد و گفت خدا مرده. مگر همه این این کلیساها مقبره او نیستند؟ چیزی که نیچه میخواست بگه این بود زمانی بود که خدا برای مردم واقعیت داشت. اما حالا خدا واقعیت نداره و اونها مجبورن این همه ساختمانها رو بسازن. وقتی اولین کلیسا شروع به کار کرد، اثری از, از این همه ساختمانهای کلیسایی نبود. فقط خانه زنی ساده به نام لیدیه وجود داشت. روزی وقتی به آسمان بریم من معتقدم این زن کوچک لیدیه قادر خواهد بود بگه توی اروپا کلیساهای ساختمانی و بناهای زیادی وجود داشت که به عنوان کلیسا استفاده می شده اما خانه من اولین کلیسا بود. بعضی ها به ساختمان کلیسا خانه کلیسا میگن و این فکر بسیار خوبی هست کلیسا یعنی مردمی که گرد هم می‌آیند و ساختمانی که در آن گرد می آیند خانه کلیسا هست. کلیسای فیلیپی در خانه این زن به نام لیدیه شروع شد. در شهر فیلیپی داستان معروف و بزرگی درباره پولس پولوس هست. اون داستان بلندی هست و من مطمئنم که خیلیاتون با اون آشنا هستید. در شهر فیلیپی هست که پولوس و سیلاس دستگیر میشن. اونها رو چوب زدند و بعد به زندان انداختند. وقتی رومیان کسی رو دستگیر برای جلب توجه دیگران قبل از بازجویی اونها رو چوب می‌زدند اونها این کار رو برای ارعاب مردم و تحکیم قدرت خودشون انجام می‌دادند پولس در دوم قرنتیان 11 میگه یهودیان مرا پنج بار و هر بار 39 ضربه شلاق زدند و سه بار از رومیان چوب خوردم و یک بار هم سنگسار شدم سه بار شکست کشتی شدم و یک شب و یک روز دست خوش امواج دریا بودم بعد از اینکه اونها سیلاس و پولوس رو چوب زدند که نه تنها لباسهاشون پاره شد بلکه مانند اثر شلاق پشتشون رو کبود و زخمی کرد و ماهیچه های اونها ورم کرد اونها رو به زندان انداختند پاهای اونها رو با زنجیر طوری بستند که اونها مجبور بودند بر روی پشت زخمیشون بخوابن ما میخونیم که در نیمه شب پولوس و سیلاس دعا کردن می کردند و سرودهای پرستشی میخونن احتمالا اونها داشتن مضمور و 23 رو میخونند مزمور کتاب سرود این قوم بود. تمامی زندانیان صدای اونها رو می میشنیدند و در این لحظه زمین لرزه شدید و خارق العاده ای اومد و تمام درهای زندان باز شدن و زنجیرها از دست و پای زندانیان باز شدن. زمین لرزه عجیبی بود. در نیمه های شب زندانبان بیدار شد و چون تمامی درهای زندان رو باز دید، فکر کرد که زندانیان فرار کردند. از این رو تصمیم گرفت که خودش رو بکشه چون رومی ها مسئولیت حفاظت از زندانیان را به او سپرده بودند و طبق قانون اگر زندانی فرار می کرد محکومیت او به زندانبان تحمیل می شد ما در کتاب اعمال باب 16 می خونیم که وقتی زندانبان بیدار شد و درهای زندان را بازدید شمشیر خود را کشید و چیزی نمانده بود که خود را بکشد چون تصور می زندانیان فرار کردند اما پولوس به صدای بلند گفت به خود آسیبی نرسان همه ما اینجا هستیم. بعد زندانبان به پاهای پولس میفته و اون سؤال بزرگ رو میپرسه ای آقایان من چه باید بکنم که نجات یابم و پولس اون جواب بزرگ رو به او میده به عیسی خداوند ایمان آورد که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت بعد میخونیم آنگاه پیام خداوند را به او و جمعی اهل خانه اش رسانیدند درست در همان موقع شب زندانبان آنها رو بیرون آورد و زخم را شستشو نمود و بیدرنگ او و خانوادهش تعمید گرفتند. زندانبان ایشان را به خانه خود برد و برای ایشان غذا آورد و او و تمام اهل خانهش از اینکه به خدا ایمان آورده بودن بینهایت شاد گشتن. بسیاری بر این باورند که چون وعده این بود که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت، پس اگر من به عیسی مسیح ایمان بیارم، همه اهل خانهم هم نجات خواهند یافت. اما ملاحظه کنید که آیه میگه همه اهل خانه ایمان آورده بودن و کلام خداوند نه تنها برای زندانبان گفته شده بود بلکه به اهل خانهاش به تمامی کسانی که در خانه او بودن نیست کلام خدا گفته شده بود و همه اهل خانه شنیدن و ایمان آوردن و تعمید یافتن نحوه نجات در آیه 31 با به شانزده به خوبی توضیح داده شده به عیسی خداوند ایمان آورد که تو با اهل نجات خواهی یافت این یک ایمان ساده و معمولی نیست این ایمان به خداوند عیسی مسیح است هر کدام از این سه عنوان عیسی چیزی متفاوت رو به ما یادآوری میکنند مسیح یعنی ما ایمان داریم که او همان های موعود هست و تمام چیزهایی که در کتاب مقدس درباره مسیحا صدق میکنه درباره عیسی هم حقیقت داره مثلا اشعیا 9 میگه برای ما فرزندی زاییده پسری به ما داده شده است و او بر ما سلطنت خواهد کرد اسم او مشاور عجیب خدای قدیر پدر سرمدی و شاهزاده صلح و سلامتی خواهد بود تمام این چیزهایی که در مورد مسیحا صدق میکنه در مورد عیسی مسیح هم صدق داره وقتی ما او رو مسیح خطاب میکنیم به این چیزها اقرار میکنیم اسم او عیسی بود معنی این نام نجات دهنده است پس ما ایمان داریم که او ناجی هست و فراتر از این وقتی ما او رو خداوند خطاب می کنیم او رو به عنوان خداوند می‌پذیریم. دیتریش بانهوفر کتابی نوشته تحت عنوان بهای شاگردی. در اون کتاب او اصطلاحی ابدا کرده، فیض ارزان. خیلیها بر این باورند که با فیض نجات یافتند، ولی این فیض رو فیضی ارزان دونند اونا فکر کنند نجات یافتن خیلی آسونه. حالا اگه عهد جدید رو درک کنید، چیزی به نام فیض ارزان وجود نداره. اگه درک بکنید معنی ایمان به خداوند عیسی مسیح چیه میبینید که به هیچ عنوان چیزی به نام ایمان آسون وجود نداره این چیزیه که پولس به این مرد میگه و او ایمان میاره او نجات یافت و تعمید گرفت بسیاری بر این باورند مردی که در رویای مقدونیه از پولس کمک خواسته همین مرد بوده این زندانبان بوده که در رویا به پولس گفته بیا و به ما کمک کن تنها چیزی که پولس در مقدونیه پیدا کرد جلسه زنانی بود که کنار رودخانه دعا می کردند از این رو معتقدند که این زندانبان در شهر فیلیپی همون مرد رویای مقدونیه بوده در ادامه میخونیم که فردای روزی که این مرد و اهل ایمان آوردند، معمورین رومی چند نفر از پاسبانان را فرستادند و دستور دادند که آنها را آزاد کنند زندانبان این خبر رو به پولس رسانیده و گفت معمورین رومی دستور دادند که شما را آزاد کنیم پس بفرمایید و به سلامت بروید اما پولوس اعتنا کرد پولوس به عنوان یک شهروند تابعه روم بدون محاکمه کتک خورده بود از این رو در پاسخ گفت ایشان ما را که اتباع رومی هستیم در مله عام و بدون محاکمه چوب زدند و به زندان انداختند و حالا میخواهند ما را مخفیانه بیرون کنند هرگز خودشان بیایند و ما را بیرون ببرند پولوس فیلیپی را در زمانی که خودش تصمیم گرفت درک کرد او و سیلاس پس از آزادی از زندان به خانه لیدیه رفتن و از برادران خداحافظی کردند و پس از آن شهر را ترک کردند. به هر حال وقتی داستان زندانی شدن پولس در فیلیپی را میخونید، این سخنان او رو فراموش نکنید. به عیسی خداوند ایمان آورد که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت. امیدوارم شما که ایمان آورده اید، تصمیم بگیرید، باور کنید عیسی ناجی، مسیحای موعود. و خدا در جسم انسانی هست و شاه شاهان و رب الارباب هست دوسته خوبم امیدواریم که شما هم مانند اون زندانبان و مانند شاول به شناخت ایسا نائل بشید و اون رو به عنوان منجی و خداوند خود بپذیرید و از نمونه های اونها پیروی کنید و با تعمید آب به دنیا اعلام کنید که مسیحی هستید و از ایسای مسیح پیروی میکنید و مانند پولوز، شجاعانه شهادت و پندیکاست شخصی خودتون رو اعلام کنید تا دیگران هم بتونن به شناخت فیض و نجات خدا نائل بشن. لطفا برنامه خودتون رو برای شرکت در جلسه بعدی تنظیم کنید. در جلسه بعدی به مهیج محیجترین کتاب اعمال رسولان ادامه خواهیم داد.